چیز پشت میز مثل این تدقیمتون های سر من آقا اسمه هم عبدالله و که نه رب, رب رسوله رس رس میگو میگو ما مینوشنیم جذبه جاهلی وجوده حالا اوتوکوپی هست، حالا چاپ هست حالا خیلی از خیلی آزمشونه خیل هست که هر کسی هست آدم با صرف مختصر وقت دستگاه کامپیویتر که خونهش داشته باشه و خودش کتاب خودش رو میکنه می‌کنه بعدم باری چاپ کنه اینا نه بود در اون بوزه بنده شخصاً در که در سالهای بعد از دوران پهتبی اول دوری دانشکترم رو بیگذر بودم یعنی از سال 1323 شهری بلی 23 وارد تخصیلات آج شدن بعد تا دستگاه موتا آخر و روز آخر که دکتری دکتر تام کردم نوشتم در رتیجه اگر یک کتاب میده میکردم که خطی بود و خیلی درم میخواست این کتاب رو داشته باشم فکر میوان می میکردم؟ مینجستم مینوشتم، مینوشتم، مینوشتم، و مینوشتم به پیر و ده ها کتابی که من به خط خودم نوشتم باشتم کتاب رو داشته اگر نوست خطی بوده فکرمشون بعد خدا رحمت کنه یا نکنید که من خیلی آدم مهم بودم که کاری دادم اگر من مثلا عوشت در کتاب به خط یاد خودم نوشتم و گدشتم در کتاب کنم مرموم سعید رفیسی بزرگ خدا رحمتش کنه شاید صد کتابو به خط خودش نوشته گدشت کتاب کنش بعد نوشته خطی کتاب در کتاب ماید من هست خودش نوشته فرحالی در اون روزگار سر و میگه و بهترین خدا و میشینن و میکنن و میکنن و رنگش میزنن و میکنن یکی هم یه طلبه گشنه یه بد بد لاتی یون روی یه مشکاق از باره با خط برد، چای برد، سواد مثل سواد منده کم بعد میداره چیزی بولستان سعدی نسخای خطی داره که همین حالا با این تومنی که اردشش 140 داشت شدید یه دونی دلار دو تومن نمیستی نسخای خطی برای نه ریخ داره، نه ظاهر داره، نه پاتن داره، نه کاغذ نه جلد خوب نه خودش بگی غلط تا غلط داره، 900 دا تا با این در این روزگاران آلا این که گفتم است که این‌قدر که نسته‌ی خطی دیوان حافظ در دست مردم است هیچ کتاب به این انگازه از نسته برده کشم این‌ها بیاید می‌کاشیم حالا تو کتاب مهم نیست که می‌خوام باشم مبایستی در سال چهارصد درست هزار یاد مباشی هزار صد. حافظ در سال هفتصد و دو مرده آخر قرار هشت وقتی هم مرده قطعا میدونیم که رو جمع نکرد یعنی دیوان حافظ اولین نسخه جمع شده که داریم هشتزد و یازده شانو فروسی که نمشه تا هشتزد و یازده چقدر میشه؟ و یازده چند بده؟ خود حکیم میگه هزار دیگه که ما در دست داریم پنجا و دو هزار من کمان دارم که همشت حالا، فهرها که کمایه ونده است ممکن باتل بشه ولی هم 52000 بیت یا 60 بیت فیت در براور 4 زار فیت به یا حافیت حافظ رو 400 4 بیت 600 فیت کرد و خبرم از طبان داریش 600 فیتش به چه مخصیصه بود شهرانی من خرم هست که که یا خدای چیزی از مقام رو کم کرده اما اون شعری که حافظ رو حافظ کرده چار سد و هشتاد و ششش رو ازده مرتبه نصفه و برای که بدونیم که این 486 و هشتاد کجا آمده همینجوری توایی نبوده. باید بگم که چههل سال یا بیشتر پیشت از قصد خانداری مرحوم غزگینی، محمد غزگینی یه نصحا حافظ چاپره، حافظ غنی غزگینی رو همه تونید رضاق قرهنگی هم چاپره، در سال ۱۲۲۰ یعنی خوشبختانه در گوزگار پهلوی اول این کتاب همه کاراشت تموم شد تا کرداد ۱۲۰۰۰۰ است بعد از ۱۲۰۰۰ محتششون برید برای درست وقتی برای این جنگ بودونن، تیفوس بودونن، نون سیرو بوده بودن بعد وقتی برشنگی این کتاب تنگوش دید. مرموم غزنینی، یک کتاب شتاب کرده، یک نسخه در دست داشته که تاریخ اون نسخه از 827 هزار 1320 این نسخه 827 قمری قدیمی نسخه خطی از حافظ بود که کامل مرد شهر خرپالی سردانه این خرپالی سید نازنین باشگور دریجه یکی بوده کتاب خروش هم بوده بلال ازار بود کن کتاب خروشی داشته یه نسخه حافظ دستش میاد که خالقش ۸۰۰۰ یه دونم خودش چاپ کنید بوده در سال ۱۰۷۸ وانی پل غلط بود و برس جا چاپ وقتی که می سنید بوارده کار جاهونه و غلطی و این وازیا نبوده و اون چیزی که از چاپ در میاد مفت نمیارید در صد نمی‌است بعدا وزارت فرهنگ میاد با مرحوم قزغیلی که با ناز و نوازش و سلام و سنه با خودشونش از اروپا آوردن که آه سرمایه نه آه بودید که فرهنگیات مثل محمد آدم مهمه بودشون تا اینکه فهمیدن مهمه یا نه ولی دیدن که یک رو ادوار گرام رو نیگورزو رو اون یکی نورتگو و اشکوله رو اون یکی اون یکی بگن دادن مهمیه چون که همان گفتن آقا بفر میدنش بگیاره اینچه بکنه آقا بردن که فصل شما باید خرمن خوش چین خرمن دانش شماش شما, شما حافظ چاپنه بست گفتن آقای دفرگانی هم چون علاقواندن و علاقواند بوده به قانون غزبینی علاقواند بوده به حافظ علاقواند بوده یک کتاب شناسه در جدی و اختر هم میذاریم دم دست شما که شما بار کنه بستاری کنه برای مرموع غزبینی این بر اون بر اون بر اون بر میگرده و هرچی حافظ معتوره به در پور که نسخهش قدیمی بوده پرنده بوده و گیر میاره در اختیار تاییر می فکر نکنید من رو خیلی خیلی دریای علم دارم اینا رو داشت دارم از قیل میگم خیلی این مقدمه محمد غزگیری رو بر حافظ چام بزاد ترنگ بخونیم همین این خواهی که تو هست من از آسمان هست ما تا دوستان حسل نکردم مقدمه غزگیری رو داره بکنم اگه نه همین رو برا میگه براه قنی هم آمد و رفت و نسخه گرفت و چه نسخه و این و دبیر و یکی و هن و هندی و نخ رو ملاحای نخ و چنین چنان بعد من اون قضیمی نیست که چون هیچ نسخه از این نسخه خه، خه علامات است که مالک نسخه چون از این نسخه هیچ نسخه قدیمتری تا این روز وجود نداشته این هست که من مطلقاً و منحسراً اساس کار خودم رو بر این نسخه ۸۰۰ ساعت قرار بودم. البته مرون غزم این نسخه دیده بوده که علاوه از نسخه قدیمی هست نسخه نسبتاً معدوری هم هست. غلط نه خیلی بسیار. و به هر حال قابل این هست این اساس کرده. گفته من این رو اساس قرار دادم. من ای از این من حرف نمی این بوده که یک مثل مجده این که مصیحا نفسی می آیا یا که ذهن باز خوشش کسی می یا از قم و مکن ناب و فریاب که دو بوشتده انفاوی و فریاب رستی می یا دل آخر، این تو ناسه ازن مسردون نماسیز و دور که دست کور بدیم این بول آفز ولی که این در نسخه هیست بس. دی یعنی اون کاتب بگیر نهیم بردیم به هر به مرحوم اساس کارشون این نسخه هیست قرار میده بگیم من از من این معتوردن کارم نسخه پیدا نکرم اساس کردم. نمیم ماشه چهر سال، چهل و چند سال، بعد از مرگ برای غزمی و چاپ شدن این نسخهی در سال 1320 استاد عزیزی منده دوکیو پرویز ناطل خاندری، آفز منتشر میکنه که اولبار بار بعد از انقلاب شد اسلام اسلامی منتشر میشه یعنی سال ریاست فرهنگستان عدد هنر و قصد فرهنگستان زبان رو رو ده داشتن کتاب که ای هم خوشش یعنی هر چیزی زور داشتن زدم این کتاب حتما نمتشه باشه بلای که در روز سی ساعت سخش شده بود و ما فجار رو بردیم میگفتن آقا سناتور آقا وزیر بوده گفتن اینا ممنوع علم آمله اینا چیکی ازشون چاپ نکنیم؟ ما بلاخره رفتیم سراغو وزلیرو انا فت این سیسد سف کتاب چاپ شده و شیس هزار قرض غرض بز دولت بالا وردن میخواهیم سیسد سفر بریزم دور دیوان حافظ هم هستیم چیزی نیست ا نمیخوایم بهتر بدم تا تش چاپ بشه بفروشیم که دو پول دولت در بیا ظر فتن فشار آوردیم گفتیم که چاپخنه و اداره و هر زهرمالی که هست یه ساعت 12 شب یکی شب ساعت 4 صبح مشکل افتاد زنگ بزنن به من من از خواب بیدار کنم این کتاب من دارم در درم کنه چاپ شد. بعد مشکلی پیدا شد تو برنامه این برنامه می خواد چاپ بدار بعد زنگ به ما حدود سال یعنی سال بعد از نسخه دکتر خاندری بر اساس چهاردن این چهاردن نسخه از هشتتر 16 هست، ۸۲ هست، 824 هست، هست. هست، عرض کردم ۴۱ تا نسخه است که دکتر کانری ازش استفاده کرده از این ۴۱ نسخه، یک دیمهش تاریخ نداریم و ما حالا می‌کنیم خیلی هر به ریاضی بزنیم اون یه دوارم چند تا سیزده این سیزده تا نسخه دیگه اون بیداری با باید من باید اون هم اونان ها کانداری رفتی کتاب بسیار قدمی است دیوان سیده جفشان چاپ کرده نشانه های زیادی هم داره که حتماً این چیز دید. حتماً نسخه قدمی است ولی تاریخش رو ننوشه اون حالا کنار دیگه یه سیزده نسخه دوازده نسخهش از نسخه ن یعنی جنیدتری نسخه ای که خانداری استفاده کرده و تاریخ داره میزنید پس نسخه خانداری از هشتد تا هشتد در نسخه درست؟ نسخه 495 تا غزل. نسخه خواندنی چاپ شده 486 تا غزل. یعنی وقتی که 12 نسخه قدیمتر از نسخه غزلی به دست آوردن، باش مقایسه کردن، نتیجه‌اش این جوری شده که 9 تا غزل تازه کم با توجه به اینکه خود خواندنی که 2 تا محسندم حافظ، خونست قصدیری نیست یکیش که یاد منه همون که زدک مسیح آنف و سنیاه اینکه مزفانه‌اوی هست بنابراین از این همه حرف شروع و بردونم یک یکی دست جوده هستی بنابید ظاهراً در قدیل تنیه‌تر با از در دست به دو طور دو مسلم کمتر از و تقریبا یکی یعنی نسید در حدود 486 است به طور معدل این 400 486 در حدود 400 حالا من دفعه دیگه که آمدم از رو نصف تمام عبدیات دیوان حافظ شما از اما چند بده؟ قصیده ها قایمی چند بیت رو هم چند در حدود چهار بار احتمالاً چهار ولی حالا اینو همینجوری حدود چهار یک دو تا این تقسیم بر 486 شعر در که بخونی یک کمی به تو که متوسط هر غزلش 8 تا 3 بلکه هشت و بلکه هشت و بیس دیگه با ماشین الکترونی درست کردن اما این من ولی به هر حال کمتر از هشت و صده همونی برید در هم بزنیم چند سال خواهد شاعری کردیم؟ باز به تقریب در روید پنجاه سال آره اگه 500 تا غذر 14 تا 500 تا غذر در ذره 50 سال میشه سال ده 10 تا غذرش چند به توهه؟ 83 که 80 سال 83 یه تو 12 اونان میشه آقا های شاعر شاهر شهر گفته میگه بود که تارهاست یا اندوش است وقتی بگن یه شاهری شده سال شاعر بگه سالی چند بده کنم؟ هشتار یا عجب شاعر تحفل خودتایی بسیار کمکار کرد. کشه ماه این شیشت بگیم شیشت بگیم شیشت یعنی کارنامه با ولی خب این, یعنی این, این حساب اصلا جواب این که حساب اصلا حافظ یکی از کاروی که کرده برای دستی ها، این چواهض رو همه اصلا نمیتونن دستیارن یکی که آدم یک گوشه های ازش میدن، یکیش اینه این حافظ در دوران زندگیش تمامش رو قبل از خودش رو حتی شو عرای در سه، بوم و چهاره مکنه ده, ده دفت کنه بسیاری عرضیش تمام دیوانشون از برداشه کار از بنده که اسم خودم محترم و و رو از این که اصلا جلوم از چهر رو برزم کب کب چند تا چند تا دیوانو مرد برد از بیت افن تا بیت آقش رو دقت بودی والا به پی رو برای اینکه وقت بگم که حتما اگر بگم بیشتر از بیستا، باید بیستر آق شاید هم حتما، من در تمام این عمر بیست و ساله یکی از کده آن تبارکت آلا رو گرفتن سی تا دیوانشه از داخل بعد هره خوندن بنده کجا؟ خوندن خواهجه کجا؟ شاعری داشتیم، شاعر خیلی سرای درجهگیه که تمام شاعرهای فکاهی امروز بود پاشمون پای ببیزنن ست قرامزای روحانی ست, روحانی, ست روحانی متولد سال 2014 قمری بود در مشهن ده سال قبل از مشهن و حتی این اوافر زنده بود عمر گراز بود از هشتاد سال تر و خیلی شاعر درجه یکی بودن شعرهای در شعرهای پوکار خیلی دل کنم برای اینکه یکی تفقی باطنی باشه ولی سیزنه من زدم ولی یکی از فیتهایی که گفته این است که که کلام خواهجه کجا حرف مفت وقتی کجا نه روابه کجا هم تفقیه کجا براسته از هم و دقیقا این توه، حالا دیوان خوندن من با دیوان خوندن پاچه تاسه این طوره بعد این گفتم روش که نمیتونه به این دلیله که من چهار دیوان میخونم پنج تا دیوان میخونم بریم حافظ شش تا، 5 تا، هشت تا ترکیب دو کلمه‌ای سه کلمه‌ای دیوان هست که خوبه مثل مرد ناکس کشتی به کار میده گرشاستنامه عصدی رو من داشتم میخوندم من که همان در ایران، در این آدمایی هایی زنده هستم الان در ایران صده‌اشون که این گرشتون از اول تا آخر از ابتدا تا آخر بوده باشه به جورایت میگم شاید صده فعلا باشه حالا، در این عصر که کتاب گرشتون همه سه بار چاپ شد، دو بارش چاپ حیبه یرماییه یه بارم کلمان گوارد بهانی مسیح در فرنسو چاپ کرده سه بار چاپ شد. باید خرده بودیم نگاه میکنم بنام میشه که حافظ میخونم معواره که استفاده کرده چون یه ذره شرای حافظ رو ذهنمه پیدا میکنم خب این یه دو بعد اون یکی رو مخونم سعد میخونم اون یکی رو مخونم مازی رو مخونم سلمان رو مخونم بخونم اینا همه اینا رو حافظ خمر ازش پیش. یه سین تا دیگه هم هست ولی حافظ بود تمام شو عراق محاصره باشد بود این نشون چیه؟ نشون این است که این شاعر کار جدیدی جدید بود و داشتی که این کار امروز فردا حرفان نیست متوجه بودی که کجاست؟ نه هرکو نقش نزمی زد کراموش کل پذیگی بفتر تظر ترفه میگیرم که چالاک از چا می‌گیرم تظر قربابل می‌گیر درخته و میر تو بوده خار پنان می‌شه رد دیش شاهین میاد، یه قایم می‌شون می‌گیرم می‌گه نرکو رو نقش نزمی‌گذرد کلاماش دلپذیم گفترم من کلام هم دلپسی. من تظر به ام می‌گیرم اون برای که شاهینم چاقه، بگر باور نمیداری یا این قبول نداری؟ من دلیل دارم بگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پوس که مانی نسخه میخواهد از که کلک مشکل این نیدونه از ایچه کار داره نکشید دست روخ شین تا سر درف سخن را به قلم شامه زدند یعنی از وقتی که قلم آماده به حرفای نوشته هیچ کسی نقاب از روح ان بشری بر نگیره مستعاضه آدمی استم که زین آتش نموفته که در سینه من است این پرشید چهله ایست که در آسمانه که این آتش پرشید نمونه ای از آتش دلمنه منه نه آتش دل من نمونه از پرشید و این بلندی یه جا دو جا و پنجا و ده جا و سن جا که نیست سر ما بودره می خوانه که ترک بامش به فلک برشده دیوان تقییه مدرسه دی مصد بود داد که می حرام ولی بهت مالو بود نظاهر اینا که مو آدم راست میکنه یکی و تا و صد تا و هزار تا نیست و این نشون میده که این شاعر اولا که شاید مقادیر زیاد شد دور نیده است دوم دو این که این شعرها رو ترکیمون صد بار و هزار بار و 500 بار و چهارصد بار و 300 بار دیده و باز، دیده و دوباره، دیده و سه باره دیده شعرهای حافظ نتیجه اولین بار ذهن نیست شعر سعدی نتیجه اولین بار غیزه ولی شعر حافظ میشه آدم از پنجاه طرف یه مطلبی رو ترک کنه بگو، دنبال کنو این ورش رو به پادر، اون ورش رو به پادر، بالاش رو به پادر، امروز یه بیتی رو واسه این آقای پریشان که اینجا نشسته داشتم میگفتم و به این دلیل بود که یه غذر از حافظ مطرح بود دید دی یه دی یه دلی که قم یاه دگر باه چکر چون بشد دلبرو با یار و خدا چکر آه از آن نرگست جادو که چه بازی انگید واو یه از که واو مردم رو هش یار چکر. چه و چه این بیدش مورد نظر من بود میگه که عشق من رنگ شفق یافت ز بیمهری یافت طالبی شفقت میدید که در این پار چکر. این بید تو من یه ذر توضیح به من یه ذر از این توضیح دوبرم اولاً این شینا رو نگاه کنید عشق من رنگ شفر بیافته بی مهری یار، تاره، شفقت بیم که در این کار شدید یکی معنی شعر چیه؟ معنیش ساده است یک عشق من سرکون شد سرک شد در نتیجه بی محبتی محشوب ولی این تغصیر محشوب نیست تغصیر بخت نامساعده طالب نکنه من, ای من این چیزو بهمی ندارید شاید در آثار گذشتگان حافظ بتونید مثلا صد بکیدو کنید که همین بود اما فرقید با اول خودم میگه اش دو من رنگ شفاف یاد عشقی شد سرخ نمیشونم ما طالب کسی رو ندید. چشم گرمزی شد گرمزی چشم رو که اگر گریه یه ذری شدید تاشه تحبیر میشه میگه اینکه اصلا سرخ شده کاملا این رو تحبیر میکنن در مقام مبالغ شاهران و عشق خونین عشق خونینه. من از سرخ برا آمد چه خجل از کرده خود پرده دری نیست حالا اینجا میگه عشق من رنگ شفاف نو شفاف چی شفاف سرخی آسمان معمولاً قبل از باران ها در اون صورتی که شب افتاد یا شفاف سرخی بعد از غروب آفتاب معمولاً میگه فلق ولی گاهی هر دوشم شفاف راست اینا رو جای هم بدحال شفاف ترکی که در نبون به یا پیش از برآمدنش یا بعد از فرو شدنش در آسمان ظاهر بشه خب سرخم میگه که من رنگ شفاف یا چرا؟ از بیمهری یا در محبت به اش منز اما کنه یه معنیش هم چیه؟ هرشی بیمهری یعنی نبودن خرشی نبودن خرشی چی می‌کنه شفق یا خلق رو می‌ره رو آسمان بنابرای می‌گه یاد بی‌مهری کرد و عشق من به رنگ شفق شونه به همینجه کفایت نمی‌کنه اون دارد به جای برد می‌گه تاله تاله از مستر طلوعه طلوع صفتی سپاس برای خرشی تنها ستاره، یعنی ستارگان هستند که طلوب دارن و غروب دارن طاله یعنی طلوب کننده چون اون طرف حالا یه سواد مهریست ها مهرونی کرشید اصلا اون طرف نیست میگه یار به من بی محبت من اشکم صحب شده شد ولی چون تجاه محبت مهر آورده، بی مهری آورده بعد شفق آورده که با مهر مناسبت داره اون طرح طالق آورده که با طلوع و با مر باز مناسبت داره بعدش هم شفقت آورده که باز از همون شهر شفقه و با شفق تحلیس نابسته یعنی دوتاش شفق و شفقت اون یه حرف زیادتر داره که من رنگ شفق یا زبی مهریه یا طالق شفقت بی که در این کار آیا امکان داره که آدم واشک با اولین تخیلی که در ذهنش میذاره همه این مطالب رو بکنون درست کنم من گمونم بیفون، عالم علوم طبیعی فرانسوی که اولین کسی که رساله در باری نوشته دیگه که هرگز و اولین وارده ذهنتون تصمیم داشت برای اینکه او بهترین محصول ذهنتون نیست و ذهنی که یه که کن از آتون خوش میاد یادون باشه که اگر دنبال کنید و یه سر باز برسید و دوباره و سه باره نگاه کنید حتماً بهتر از این میشه من در این مورد یه ذکر خیلی میکنم زیاد آدمی که متاسمنه الان یادش رو کلی فراموش شد ساید یه بودم گردن خود سکید هر حال یکی از مترجمه های درجه اول زبان فارسی محمود اعتمادزاده محلوب به حاضری است آرام و چه و چه و بایدانی هم نوشته و دختر رعیت و این اونو خیلی کار کرده خیلی خیلی و معتقده و درست هم میگه که به قناع زبان فارسی هم کمک کرد. خود این اعتمادزاده هم میگه میگه من یه مطلب رو میرمیسم بعد میخونم بعد دوباره بعد سه باره می‌کنم بعد چهار باره می‌کنم بعد ده باره می‌کنم اینقدر به این ور می‌رم و اینقدر با این کار با می‌دهی این, این حرف کش گفت تا به جایی می‌رسی که وقتی دفعه بعد میخوام بخونم میگه دلم آشون کشه او خوب من درسیم یعنی به هیچ وجه اون چه ذهنش داده راضی نشون دارن می‌گم برای جمعنایی برای که شعر را عهد یاد اگر همون که تا آمد راضی شدن خوب خوشحال شد، حیدارت شد. ولی بعد خاطرش باشه که بهترش میشه، باز بهتر میشه، باز بهتر میشه. باز بهتر میشه. و اگر بهتر نشود، باز هم مهم نیست، شدم دور. روغن که موشایی نه. چیزی اومده تو توش فرشن نوشته بعدم هم خوب که هوا رو جمع کرده دید نه این به دردش نمیخوره این دل خودش نمیگیره چیزی که در خود بویندر نگرفته شان برمیدنید منتشرش میکنید منتظری که درش چنرندر رو خوانندر میگیره همون حافظ بهش ایشترش داشته یه گل فروشی گل ترگرد کنی هست دوره ما پیمردان بخوریم باقی داشت مکه یه قدریشی که اون ات کجایی بود آقای پروتیبا؟ گل خونه و گل فروشی فروتیوان دوره پهلاوی اول که گل بسی کسی ما خواست بخوریزه از پروتیوان بکنید این بازار کپاشای فعلیه تهرون هم اول بازار کپش فروشان هم بود اول بازار گل فروشان معروفه بازار مرگیه باید کم کم شد بازار کم پشن. میگه که روحانی میگه میگه گر سر و ارعر گر سرب و ارعر پس در قامت رهناستی از قط بلندی یا رم از یک پرسخی پیدابست گفتم که سنگی و در چاب زنختار پشن چون این چند در محبر دلاغ نابیناست تاریخ و در هر حلقه جای هزابران مرگ دل بازار مرگی تاریخ هم بوده تاریخ و در هر حلقه جای هزابران مرگ دل گویی که ظرف آن سنم بازار مرگی هاست هم لاله و هم گل در. هم نرگس و ستم گلد در. رویش مگر گلخاقه بزی و بروتلیوه بعد این مال مرحوم است. و هر حال مخوبیم یه شعر آدم میخونی ذریع میخونده یکم شعر حافظ یکی از جو حافظ نکشید از رو پندیشه تا سر زورف سخن را قلم شانه صدیم اما راجبین حافظ به نظر من از اول که ما هم شروع کنیم ما یکی دو کار بعد بکنیم اولش این است که همه تون بعد از حافظ حالا اگه داشتیم چه این داشتیم برای هر داریم ما اینجا دو کار میتونیم کارش این است که قرمیم به قرمیم یه دونه غزل حافظ رو تفسیر کنیم بالا و بالا و باییدون زیر و بالاش همه ولی همه این کار داریم ده جلسه که هستین ده, ده, ده, ده, ده, ده, من ده تا شد یه نه تا شد آقای ده رو از حالا ده تا آقاید د بعد نیست، من جاییم برد باشه ولی کاری صورت نمیده برد یکی از کاری که میتونیم بکنیم امیدوارم اگر همش رایی میتونیم بکنیم داقل قسمت چه بکنیم؟ این است که تمام این حافظ از اول تا آخر بو خونم که درست داقل باشیم یکی برای این کار دوستان باید من کمک یعنی مثلا هر دفعه باید نمیم چه هر دفعه، جارزه <تص> رو جدا 1486 تا در بعد هر جزه 47 تا هزار فاجرو شما قبلا مطالعه کنین و ببینین بعدا ما 38 تا ازل فاجرو قراره از رو بکنیم تا در این ده جزه بتونیم این جلزه رو از رو از رو بخونیم اما اگر همش هم نمی‌دونیم تاشو 200 چم کار بکنی به نتیجه دیست. گلیلش نیست که بنده کل هم که اینجا خدمت چوانیش سم باید در کمال شهرمندهی خدمتون رو اعتراف کنم که هیچ متن فارسی نبود است پیش هیچ استادی منده شروع کرده باشم و خونده باشم و استاد از اول تا آخر اومد رو به من درست فرموده باشه هیچ مرحوم و چهار مقاله رو می فرمود ده صفحه از اول سال تا آخر سال درس می فهمت. آخر سال همه یک چهار نواره نیمتا بعد گرفتیم خدمت استاد گروزانفر ایشون چهار تا کتاب همراه هر درسی دوتا درسش هر چهار تا کتاب یعنی هشت تا کتاب هشت تا کتاب اون که هشت تا کتاب من داشتم دفتر دوم شاهانه بود از اول پاتچاهی قیقوباد تاریخ بیهقی بود یک جلد جلد اول از کشف الاسرار و عدت الابرار بود مصنفات افزالدین کاشانی بود رسائل فرسدی تذکرات رونیای عدتار بود پنجتا دفتر چهارم مصنوی بود شیشتا معارف بهای ولد بود کتاب یارمود 800 سخنان بهای ولد پدر مولانا و یک تونه که بود که دیوان حافظ یک سال، استاد، سال اول دفتر چهاران مستقی قولانه روی که در حوض از دفتر چهاران رو ما خدمت روی درس بود. ولی خب موظف بودیم که تمام دفتر چهارم رو خودمون بتونیم تمام اشکالاتو رفت کنیم اگر اشکال رفت نشدنی داریم خدمت استاد و عرضیشون رو برسونیم حل بفرمان ولی در آخر سال کل به دفتر چهارم از ما امتحا کنم با سه تا کتاب دیگه سه تا کتاب دیگه هم دعانش رو خودش باید بره تو بخونه مشکلاتش رو حل کنه روات مشکل شده فرهنگارش بکنه آیه ها رو در بیاره اعراب قرآن، احادیث رو درگیاره، این حدیث کجا هست، چه دو هست، زیر دوبرش چطوره، تمام این کار رو کنه رسائل فرسفیر بخونه، اگه مشکل لاین انحلی داشت، با استاد درگیر بیزاریم، شون راه آخر سالم هم همه این کتاب رو امتحان بندن. سال دوبا همی ترزه، بودیم دیوان حافظ رو فرمودن، اونم در حدود در بیس تا وزد رو مدر شاگردی کردیم ایشون رو درس فرمودن ولی همه دیوان حافظ باز روز برنامه درسی ما بودیم بخونیم و خدمتتون انتعام بدیم و ایشون انتعام کردن همه دیوان رو بعد هم شاگردان موظف بودن که اگر چیزی رو بلد نیستن هم نمی‌فهمن خدمت روستاد می‌گن یاد پس اینجا اگر نرسیدیم که تعجب نکنیم من در خودمم در این زمینه خیلی کامرا و روانتر از شما نبودن و گمان نمی‌کنم که هیچ استادی یعنی هیچ کسی که حالا اسم شد که تو استاد کسی بنده در دوران شاگردیش توانسته باشه چهار تا، 5 تا، 6 تا رو از اول تا آخر استاد ما ناویدی؟ که داره خواهی استاد. نه، حتما <تص> نقل میخوندیم کنمان شما که نمیخوند نمره بگیریم ما نمرو بگیریم اما استاد آدمی بودن که دانشجویان جرعت نمی کردن از ایشون وقت خواهش می کنن تنها استاد میگونه سواد هر دانشجو چقدر که هیچ میدونه این زن داره یا چند تا بچه داره با زنش خوبه یا بد رواوز رو در چه خوب یا بد؟ کجا کار می‌کنی؟ خودوم زبون خارجی رو بده بود؟ چه کسانی را از همها به اینه رو می‌گونیست؟ به دست بعد، بنده در سال سی و بنج، آخر سالی بود احتمال استادان، دو سال در دور دکیر دو می‌کنید یا آقای اونجا بود، یه روز صحبت چون که دوستان اینجا هستن رو نرفتن، نه نه؟ یکی که احل کرمانم بود گفت من از سال 1317 اینجاست سال سال یکی از ما گفت که خب چرا نمیری از استاد وقت می بیری خدمتشون از سال جرعت اما اگر جرعت میکرد و می از تو استاد اجازه بخنمیم که بنده میام خدمت. چون استاد مثل کف دستش دونه دونه شدید و خیلی هم ساده بود یکیسی دو به ای که از رو میخوند استاد میخوند, استاد میخوند که این چی کاره میزه یکی از این بچه ها روش زیاد کردن خود استاد میفرگوند که در سطران متعالیه کرده ایم بله جناب استاد میفرگوند که قطعی هم متعالیه <تصفيق> یعنی اردوستان قطعی تمام بعد بعد برد که میدادیم. یک ساعت. بعد یک ساعت. دانشای رو میبردن، پوچه ها خودشون بودن. که چقدر مطلب درباره حافظ نگشده و اینها کجاها هست و چیستای دردود. کنید و خواهن همید. که چقدر مطلب درباره حافظ نگشده و اینها کجاها هست و چیستای با واقعا هست این در داره حافظ کار شده که لازم باشه اگر کسی قبل از این کار بیا بخونه بیاد, بیاد که لاست رو بخنه. بعد حالا بعد که نمیشه من نمیتونم بگم که آله بگم اونو برخونیم و برگردیم اینه از دوستان کنم تنم برگردیم بیا هم حالا اون که نمیشه دوستانم هم همه آلمایی هستند، سه گذشته، زندگیی در کاری کردن، بسیارشون قدم هایی برداشتن، در ادب زحمتی کشیدن، ساحت نظر هستن بلاباری، ونده اینجا بشه شاگرد به هیچ نوع از دوستان نگاه نمی کنه و گفتن قبلا دوبارم تکرار می کنم تو وقتی من این یافعه رو من سر کلاسشتن، قدری دستگارو کنم جهن رو بکنم که زرای حد زیادی نزد. اما در هر صورت این مقدار این مطالب هست که این مطالب رو باید درستان بکنن من دفه بعد میارم و مطالب که لازم هست میارم که بحث میکنیم بعد شروع میکنی دو دوبار یکی این که تا اونجایی که زورمون میرسه این حافظ رو از و شما الان همه دوستان بدون استثنای احدی پنجاه تا غزل اول حافظ رو برای جلسه بعد یک بار بخون. و اگر اشکاری داشتن سعی کنید مشکو این اشکاراتونو با هم و اگر هیچ جوری نشد تلفن بنده حاضر دوستان دوستانم به زیادی از من دارم نه اینکه نه دارن, دارن که دارن میگید من. اگر دیدن هیپ چور نشد زنگ بزنم به من اگر چیزی که من بسیر میگرم اگر هم بلندن بودم خب من هم مثل شما باید میریم میشید یکی بلند 50, 50 تا مطالعه فرمید این خیلی نمیشه باید که هشت تا سه دهم اگر میگیرید تا هشت پنجا تا میشید چهارسند بگید چهارسند عفی یعنی اگر صفحه 20 تنج باشه 20 صفحه 20 تی رو مطالعهمین تا هفته دیگه که بعد که اودیم اینجا اگر من خواهش کردم از هر مو که کهشه رو یه بهانه اینکه ندیدم نتونم نباشه یک دوم اینکه اگر نونده باشد بعد نه تنها اسباب شرمزار بنده خود چ میشه اون که هیچ مقادیری هم برث این کلاس. با این گرفتاری و این زحمت برای هم میشن از راه به این دوری میان طلب میشه و این درست است این هم که من نبخواستم به دیگه بعد هم مقادیر زیاد این مطلب که من اصلا شروع نکردم اصلا نگفتن. یعنی نه یک کرمه این گفتم که حافظ چی بوده کی بوده و چی بوده, بوده و کجا بوده و کی محاضرش چه و چش تو، گفته و حال چی خ و هم این که برار خود مرد این که مورد نظره اصلا هنوز نداریم که دو تا نسکه بوشتر بود و ست دو تا, تا نسکه بوشتر نداریم که میشه این ترتانی کنیم این ناچار ماهت بود برای جلسه بعد و بعد مرتبه دیگری که میخواستم بگم، این است که من بیه نقدار چیزهای راجب آفز نوشتم بسیار به استثار راجب چاپ های مختلف دیگوان آفز که مباره نمشنم حالات چاپ های متویش داریم که چاپ های دیوان حافظ لا تو از بودا پرساست یعنی نمیشه مرک چقدر مثلا این مثلا اولین چاپ دیوان حافظ چند یه دو رفصد نمیشه یک که چاپ شده دیوان حافظ من این چاپ رو دیدم در کتاب کانه این دیوان حافظ نسخش بود در تهران هم هست نسخش این نسخه رو دیدم تعداد غزرهایی که اونجا هست، تذیباتی که هست، کی چاپ کرده، چجور چاپ کردن چینی شده من دها گروفچینیه نست تعلیقه، همته نست نیست نمونه ای ازشون دادن. بعد چاپهای بعدی، چاپهای معتبر بعدی هر گروه چه ایمی داشتن، چه داشتن که اینا مطالب بر حقیقت کتاب کناسی، یا مطالب جیمانی. ولی خب اطلاعاتیست که ترار آخر یک در ده تا مقاله هم بنده نوشتم که بعد چاپ شد در اوکانقه قیام و من نسخه اینا رو دارم و از توی ای از مطالبی که خودم در حاله حافظ نوشتم این مطالبم هم هیچ صلاح نمیدونم و صحیح نمیدونم که سر این دوباره هستن بگم برای که معنی نداره تکرار کردن معروض رو میگن روزه کنه پشمه هر مسلمه یکی نمید روزه گیره را باند به اینکه روزو خونو 84 نشام ها رو گفتم اون نوشته شده از تو هست و میتونم نوسته اون رو هم بیارم و بدم به یه دوستی که یه فتوکپی نازویی در اختیار داره یا نهیام نه خوبی بالاخره اگر کسی علاقه‌مند باشه که به این شروعه این دی صفحه 43 رو دیگه من در ازنا نوشتم بخونه خب یه فوتو ازش تهیه می کنم میره خدمت شما میبینن باز مطلبی هست که من به جای اینکه وقت شما رو اینجا و بگم قبلا نمیشتم بخونید. برای وقت هستیتون رو بگذارید. برای اینکه یک حافظ رو در اینجا سعی کنید. بخونید. و چون همهش رو گت دارند. نیمیشه اینجا کن. باید در عمل پاهمید. که وقتی که یک شعر منی اگر نشود، اولا سعی کنیم این یعنی دوستان رو سعی کنیم به جلسات هر کدوم پنج جفت از آن بزرگی اگر مرسیدیم، لاعال هر کدوم اشبالی داره، این اشبالو بپرس. و نشیگه دو لاعال بتوانیم هم از این حافظه نگاه کرد باشیم که بعد به قول بابا دو تر دولت دوستان تاریخ ما در دانشگاه تعلق مالده، تو که من تاریخ اروپا هم گفتم. دانششون سال آخر اول من دو اول و دو آماده سال آخر و سال چهارم. من اگه نوره نگیرم از شما رد باشم باید فرد بودم باش. که سوال کردن من بله سوال دیگه کردم بسیم بله سه گفتم اصلا که هر که گفتم اصلا من تاریخ نخواستم تاریخ طلب تو هر کتاب فارسی رو میخوای برد بیا بخو. اگه درست خودی من نورت میکنم چه کتاب بیر میخوای؟ دیدم مردم این دادان گفت آه آفه. <تصفيق> خودم خیلی خودم برو آفز و هردش آفز رو گیش رو گفتم بخوند میگفت به قدری تو من اول فکر کنم بهش برکرده توانی هر بزدن به تاریخ نمیخوام تا تو بیا آفز و بخوند و داره من دست میدازه این رو قصدن عوضی که تو مرد حسابی تو افران در تاریخ تا هم چجا بعد می آن دادم جاهاشی کنم نفهیم واقعی کنم و مثلا خفص کنیم توس نو از سعادت بزنم و خوندون توس نوید گرفتی هستم <تصفيق> <تصفيق> برای دیل چنگی گرفتایی پیدا نشه واقعا بهتر از که این بخونی درستا و باید نه با این این است که الا این که موسیقی رو داخره این برای شوقی و خنده است بلی مسائلی هست که مشکله با غزالی غزنی داره حافظ چو برشکست سباب ظلپ همبر افشانش به هر شکسته که بیقه است تازه شده اولا یه بپرسم یعنی چی؟ اون به شکسته که پیبست داده شد جانش یه بوده مشکلی اون شکسته یعنی آدم شکسته اون که وقتی سوا زلف هم برمشان توز کن هم شکست برشکسته بود با درشی اطر زلف بود اونو که گیره این سوای اطراقین به هر آدم شکستهی که برخورد بر. اون آدم شکسته رو بشتاده شد ولی به هر شکسته که و تازه شد جانشون بکنن همچی آسون نیست که آدم بفندی که مقصود به هر آدم شکست دلی و شکست باطنی دیست نصیم صبح وفانامه‌ایی که برد به دوست سخون دیده‌ی ما بود، محروم باش مثل فتنامه، مثل سپاسنامه مثل گنج نامه، مثل گوشاد نامه که امروز شعر خوابانی داشتیم گوشاد نامه یعنی نامه سرگوشاده‌اید مثل سایرست و پااغوست نامه نمید نامه یعنی نامه از وفادارید نسیم صبح، بفا ای که برد به دوست مهرش از کجا بود؟ مثل ما بود، دست آدم‌ها، از ستا نود و تا که هر ستا شد. می‌خونم نصیم صبح وفا نامه که برد به دوست زخون دیگه ما بود، مهربان و برای که فکر نکنید من ابراخ میگم دکتر ادب فارسی که آمده و اندکس شعر یعنی با اجنمای حافظ درست کرده وفا نامه‌ای رو اصلا نگرده یعنی وفاش رو در سم لغت وفا ها برده نامه‌ش در سم لغت نامه‌ا برده و وفا رو اصلا نفر نفر. دکتر هم گرفته و این رو من برای شکست اون نمیدم برای که همه چیز را همگان دارن گفت گوزرجمه آمدن از دربار از کجا هک گوزرجمه رو خیلی مرد دانشمندی بود گفتن که سوالی کردن بعد کسرا بود وزیر من همه چی وارده الان میدید که رو من این رو بکنم اون برای که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند همگان هنوز زاده نشدند بنابراین این کسری هم برور نیست این وقت از اصلاد بهش بگیم نگفته بوده یا نبوده یا, یا این درس یا هر یا هرچی هر حال از این قبیل ریزه ها و خونده ها و زیاد هست که ظاهران هم به نظر نمیاد و به کار حافظ هم دقیقا همینه که این به نظر نمیاد سالها دل طلب جام جام از ما میکرد با چه خود داشت و بیگانی تقنیم آقا یه لغت مشکل داره یه پیچ دستگوری مشکل داره اصلا چیزی داره کسی نکرد ولی خب این جام جام چیه؟ دل از ما میخواسته، ما کی هست؟ بدن؟ دل از من میخواست بعد یه خودش داشت این داشت چرا از کی می‌خواست؟ از بیگانه بیگانه که من من چطور بیگانه شدم؟ گوهر که از صدف کون و مکان بیرونه است یعنی جامجام جام از صدف کون و مکان بیرونه طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد که بنده باشه این اصلا یه حدی چیه؟ اصلا مقصود ازش چیه؟ و راهت و تمیز رو اما یه تری که آخه خود این چی رو داخل اکس که تو در... در آینه جام افتاد آروف از خنده ایمه در تمه خواه افتاد تو یه چی در آینه خود اون جام پست یه تو روی کی به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوها افتاد دوش دیدم که ملایق در میخانه زدن گله آدم بسرشتند و قیمانه زدن ساکنان هرم صدر و افاف ملکوت با من راهانشید من راهانشید میگید واده مستان زد و از این قبیل یکی و دوتا و پنجتا و در عذر مرتب حسن از تجلید هم زد عشق پیدا شد و آتش اصلا این چی میگی؟ بنابراین <تصفح> وقتی که مثلا تو شعر خواهانی